بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام على سیدنا و محمد و آله تاهرین و الدائم على اعداه مجمعین على قيام يوم الدين اللهم كل بليك الحجت ابن الحسان صلواتك عليه و على في هذه الساعة في كل ساعة بليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه ارزك توعه وتمتعه فيها تبيلا مدیه کنیم محضر با مقدس مامس ارواح و نافده و در در فرجیشان سلوات بفرستیم محزن. از محضر بزرگواران از خواهی میکنم پیش ها پیش که وقت آقایون رو میگیرم یه بحثی رو سابقا آماده کرده بودم خدمت شما تقدیم میکنم اشکالات شو بگیرید عرض کنم خدمت شما این بحث رو هم بزرگواران به این انوان گذاشتن در زیل بحث روش تفقه که توی این تحقیق و توی مقاله که بررسی تطبیقی نظر مقام معظم رهبری هست تقریبا به روش ایشون توجه و انایت ویژه شده من سعی میکنم این نکته های ای که توی این تطبیق و رسی تطبیقی وجود داره رو خدمتتون تون کنم حالا دوستان هم بعد اینا رو انشاءالله پیگیری میکنن و فلم مجلس هم اگر نقدی هم داشتن در خدمتتون هست انوان تحقیق حقیر این بود بر رسی تطبیقی حکم شرعی غنا از دیدگاه آیت الله البته آیت الله العظم ای رو بزرگواران زدن از ازیدگاهت الله العظم خامنه‌ای و فقهای معاصر من نوشته بودم تو مقالم نوشته بودم آیت الله خامنه‌ای و فقهای ماصر حالا سلاح دیدن بنویسن آیت الله العظم خامنه‌ای و فقهای ماصر این بررسی تطبیق حکم شرعی غنا این مقاله بود که سابقا نوشته شده بود بر اساس با کتاب درسنامه غنا و موسیقی مقام رهبری و مقایسه ای که بین این کتاب با آراء فقهای های معاصر انجام شده این حتما دوستان توجه دارند دیگه این متن درس, درس خارج فقه که از مقام رهبری آماده شده مربوط به سال 87 هست و و, بعضی از, درس درس و بعضی از جلسات درس هم 80 تقریبا مصادفه با ایام فتنه است بعضی از جلسات درس میفته سال 80 شروع میشه سال 88 میفته تو فتنه 88 و خودشم هم آور که چطور می شود که تو اون بحران سنگین و اون بحبوبها اینطور این, این بحث ها رو جمع جور کرد و کرد آماده کرد با این قوت و اتقانی که داره که خدمت شما عرض میکنم نکاتی رو میگم خدمتتون. اما بحث غنا ببینید بزرگواران زیل بحث غنا مسئله مختلفی قابل طرح فقط تنها اینجا اون چیزی که بررسی تطبیقی شده حکم شرعی غناست اینکه که غنا حالا توضیح میدیم به چه معناست این که غنا حکمش چیه این فعل حکمش چیه حکم تکلیفی ما در این چیه همین بررسی شده قدم اول در بررسی این هستش که ما روایاتمون رو جمع بکنیم ببینیم روایات ما در مده غنا چی میگن ما همین از همین ابتدا وقتی که بین این درسنامه غذا و موسیقی با متون فقهی فقهای معاصر حالا فقه هم که عرض بکنم از بعد از شیخ انصاری تا الان عدودن که بیشترشون رو من سعی کردم ببینم وقتی ما از همین ابتدا شروع میکنیم به مقایسه کردن یک نکته که خیلی برجستگی داره اینه که حضرت آقا این بحث غناموسیقی و بررسی روایاتشون رو خیلی مفصل فحص کردن و مفصل بررسی کردن در درس های متعددی جلسات مختلفی یعنی نکته برجستی ایشون همین فحص و بررسی گسترده روایت غناست حالا این چی میخواد بگه این نکته که میخوام بگم خدمت شما این برای چی میخوام بگم برای این که بعضی از بزرگان بعضی از فقها با مر... با ذکر برخی تعدادی از این روایات میفهمند که فل جمله روشن است که غنا حرام است اکتفا میکنیم و دیگه بررسی بقیه موارد روایات رو رها میکنیم ظاهرا این خوب چندان ظاهرا ارزو کنم ظاهرا این چندان عیبی نداره که خب بله دیگه رواهات رو میبینیم دیگه معلوم اینا و غنا حرامه دیگه بشینیم تک تک بررسی کنیم که چی فل جمله روشن حرامه اما وقتی دقیق میشیم میبینیم که نه اتفاقا درست نیست این روش که ما بگیم که چون که روایات ما در مورد غنا مستفیز است و یه تذافر روایاتی وجود دارد همین مقدار اکتفاق میکنه دیگه نیازی نیست بررسی کنیم دلالت هر کدوم از روایات رو نه اتفاقا باید هر کدوم رو جداگانه مفصل بررسی کرد کاری که ایشون تو درسنامه انجام دادن استدلال چیه برای این مطلب؟ استدلال اینه استدلال دقیقه حالا من بعض از عبارات ایشون رو هم میخونم که از خود عبارات ایشون هم استفاده کنیم این مطلب گرچه درسته است یعنی این که ما میفهمیم فعل جمله غنا حرام است اما بحث در این است که آیا از آن روایات سه از آن روایات معتبره اطلاق و حرمت غنا فهمیده می شود این محل رس است و ما را مجبور می کند که یکایک این روایات را تا حدی که لازم است ملاحظه کنیم. ببینیم مدالیل آنها در چه محدوده ای است؟ چه چیز را محرم قرار داده. تعمل در یکایک روایت به خاطر این است. نها ما وقتی میریم به حجم رو... معتنابی م... از روایت مراجعه میکنیم که اینا دارن غنا رو مزمت میکنن یا نه میکنن این به فقیه این القام... القام میکنه که دیگه نمیخواد ادامه بدی بقیه روایت رو که بعضی از بزرگان هم هم کار کردن اما این مسب حکم حرمت رو مشخص نمیکنه ای ای بکار اینجاست مثب به حکم حرمت یه حکم حرمتی هست از نای شاره اومده روی چیزی قرار گرفته اون چیز چی چیه معلوم نیست شما نمیتونید بگید که فل جمله مشخصه که شاره حرام دونسته غنا رو فل جمله مشخص نیست با فل جمله گفتن تکلیف مکلف مشخص نمیشه معین نمیشه چی کار باید بکنه فل جمله مشخص هست حرمت غنا کفایت نمیکنه. پس چکار باید بکنی؟ به بیان ایشون باید بریم بررسی بکنیم حدود و سغور اونجایی که اون ای که این حکم و حرمتی روش قرار میگیره برای ما واضح بشه وضوح پیدا بکنه که شما بتونید به مکلف که آقا اونجایی که حرام است این نقطه است که حرام است خب حتما به ذهن شما رسیده کسی که بگه فیل جمله حرام است نتیجتاً چی میشه؟ نتیجتاً نمیشه اگر مکلف بهش مراجعه کنه و مقلدش به مراجعه کنه که آقا در مده این غنا چه کار باید بکنم فلان غنا چه کار باید بکنم باید به همشون دستور به احتیاط بده چون فقط فل جمله مشخص کرده که حرام است غنا حرام است اما یعنی عدم بررسی عدم بررسی و فحص از تک تک روایات نتیجتا این میشاید که شما درباره هر چیزی که صدق عنوان قنا بکند باید شما چه کار کنید شما احتیاط رو اونجا جاری کنید حالا بگذاریم که یه شبهه هم هست که اگر کسی این رو بخواد به شاره نسبت بده شبهه افتراپیش از این بگذریم این خلاصه این که این مقدار کفایت نمی کنه نکته اول و برجستهی که توی بررسی درسنامه غنا و موسیقی از ایشون میبینیم همین استش که بررسی گستردهی نسبت به عدل و روایت غنا دارن و این بررسی گسترده در خیلی از متون نیست، موجود نیست این نکته برجسته در این مقام اما از این بگذاریم حالا میخوایم استدلال کنیم به روایات برای استنباد حکم شرعی غنا اینجا دقت کنید این چیزی که بخوام ارز کنم خدمت شما واقعا این حالا توضیح میدم خدمتون که حکایت از اون دقت نظر فقهی ایشون داره و چیزی که از چشم ها پنهان مونده مرد غفلت قرار گرفته و ایشون و دقیقه نظر خاصی بهش رسیدن و برجستش کردن ببینید روایات غنا مفصله محروم خور عاملی روایات غنا رو حدودا جمع کردن سیصد تا سی روایت هست برخی از این, ر... این روایت را دستبندی کردن خود مقام مذہب رابرین این روایت را دستبندی میکنن این روایات برجسته ترین روایاتی که در اینجا وجود داره که بهش استدلال میکنن برای حرمت غنا روایاتی است که تعبیر میشه به روایت مفسره ذیل برخی از آیات اومده و تطبیق کرده به غنا اونجا اون آیه رو مثلا آیه 78 سوره مبارکه حج اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذالکه و من عزم حرمات الله و خیر الله عند ربه و حللت لكم الانعام الا ما يطل علىكم فجنبوا الرجسه من الاوسان فجنبوا القول الزور رفقای که مکاسب خوندن دیگه اینا رو دیدن دیگه فجدن رجس من الاوسان فجنبوا القول الزور اینجا ذیل این روایت احادیث متعددی هست که صحیح هم هستن یه چیز صحیح که سألت ابو عبد الله سلام الله عليه عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الاوسان قول زور قال الغنا آیه میفرماید که اجتناب کنید از رجس در اوسان و اجتناب کنید از قول زور امام صادق ابي بسیر از موصدا سلام الله عليه سوال میکنه حضرت میفهمن قال الغنا تطبیق میکنن آیه بر غنا آیه تو سوره لقمان آیه 34 من الناس میش دری له والحدیث لیوزل ان سبیل الله بغیر علمن و یتخذوها حزبن اولئک لهم عذاب مهین این آیه هم زیلش روایاتی هست که من فقط یه روایت رو میگم از وشاء قال سمعت ابو الحسن الرضا یقول سئل ابو عبد الله امام رضا میفرمان از امام صادق سلام الله علیه سوال شد عن القنا درباره غنا قال هو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري و الحديث ليضل عن سبیل الله اول از غنا سوال میشه قبلیه از آیه سوال شد حضرت تطبیق دادم به غنا دومی از غنا سوال میشه حضرت میفهم این همون میشتری لهو الحديث مهمترین منابع روای ما یعنی تو طبقه بندی روایات مهمترین منابع روایت ما همین ارز کنم همین روایت مفسره هستن که زیل آیات هستن خب اون چیزی که الان اینجا برجستگی داره توی این بررسی تطبیقی و مقایسهی ما برجست... برجستگی داره روش استدلال به این آیات هست به این روایات هست که شما چجوری به این روایات مفسره استدلال میکنید و ازش حکم شریع غنا رو استنباط میکنید. این توی چند مرحله اتفاق میفته که ما بخواییم به حکم شرعیش برسیم و این مرحله بندی و این قدم به قدم حرکت کردن این اون نکات بررسته روش فقهیشون تو کتاب غناز من نمیخوام روش فقهی مقام معظم و رو علال اطلاق عرض بکنن به عنوان یک کاری که مقایسه صورت گرفته بین درسنامه غناب و بقیه موتون فقهی دیدم که این برجستگی های فقهی قابل توجهی داره من بخواهم اونا رو خدمتون بگم توجه داشته باشید یعنی دوستان نرند در دل بحث محتوای غنا اونجا ببونن ها. هم توجه به اون بحث محتوایی داشته باشید حکم شعری غنا هم این نکاتی که برجستگی داره خب اولین اتفاقی که فقه ها وقتی مراجعه میکنن به این روایت اولین اتفاقی که افتاده این هستش که وقتی روایات زیل روایات قول زور تطبیق شده به غنا لهو الحدیث تطبیق شده به غنا قول زور قول یعنی کلام یعنی جمله دارای محتوا لهو الحدیث حدیثم یعنی سخن اولین مسئله که شما توی مکاسب هم دیدید اولین ای که هست اینکه در بعضی از ها در مقابله در مواجهه با این روایات دوچاری اشکالی شدن دو یه مشکلی شدن اون مشکلی هستش که سؤال ما مسئله شریع ما اینه غنا یعنی این آواز خوندن آواز خوندن حکمش چیه؟ این روایات میان قول زور کلام باطل زور یعنی باطل کلام باطل لحو الحدیث سخن لحو رو تطبیق رو به غنا ما صحبت ما سؤال میکنیم از یک فعلی که ناظر به چی هست کیفیت صوته ما داریم از فعل آواز خوندن سؤال میکنیم اما این روایات زیل دو تا عبارت اومدن دو تا عنوان اومدن که ناظر بر محتوا و ماده هستن نه از کیفیت صوت کلام باطل مثل کذب دروغ خاطر همین تو مکاسب دیدید شیخ اینجا می‌فرماید قد یختش و فل استدلال به هاذ روایات به ظهور طائفه الاولا بل ثانی في ان الغنا ام مقوله الكلام لتفسير قول زور به اینجا شیخ بیفهمانی که بعضی خدشه کردن ما چجوری الان به این روایت استدلال کنیم برای اثبات حکم شریع غنا چرا؟ چون مسئله ما درباره این هست که اون فعل آواز خوندن اون چیه؟ حکمش چیه؟ در حالی که این روایات آمدهاند در قول زور گفتار باطل سخن لحو رو تطبیق کردن به غنا خب حالا چون بحث ها اینجا مفصله و وقتم زیقه من از بعضی از اقوال میگذرم مثلا سلطان علماء چی گفته مثل مولا اسمایل خاجویی مثلا اصل این اشکال رو پذیرفته اصل مشکل رو پذیرفته و قال به مجاز شده بیایم بگیم که آقا قول زور رو بل مجاز بگیم تطبیق میکنه به غنا یعنی ببینید این همچین مشکلاتی پیش آمده که بعض از فقه اینجوری عمل کردن قالب مجازیت شدن یعنی اگر روایت فرموده قول زور هول غنا یا روایت فرموده لحوال ما بگیم مجازگویه اما خب مقام مذهب رهبری اینجا اولین کار همینی که این ایشون یک توجهی دادن این دقت بکنید این توجه رو من میخوام ببینید ما بیایم اینجا برای این حرف این ارز کنم بحثمون با وضوح ادامه پیدا کنه دوتا اصطلاح رو من ارز کنم خدمتتون یه غنای کلامی یه دونه غنای فعلی غنای کلامی همین که بزرگان گفتن که مثلا بگیم که آقا طرف با آواز میخونه با آواز چی میخونه با آواز ارز کنم حرفای زشت میزنه با آواز شعر باطل میخونه شعر کفرامیز میخونه با آواز غنای کلامی غنای فعلی بگیم صرفا فقط آواز خوندنه این دوتا رو تو زنه تون داشته باشید یه توجهی ای رو ایشون میدن دقت کنید یه توجهی ایشون میدن یه سوالی هست اونم هم اینی که بگن الله بیان از بنده این, ب... این نحوه بیان از بنده است. وقتی شما میفرمایید که آقا زیل روایت آیه شریفی قول زور تفسیر شده به غنا لحوال حدیث تفسیر شده به غنا و شما میگید که این داره اون محتوای باطل رو میگه ناظر به آواز خوندن نیست ایشو یه سؤال میکنن میگن که این تا روایتی که ما اینجا داریم این هشتا روایت همه از امام صادق سلام علیه است. دقت کنید اینا همش روشه ها عزیزان اینا روشه من دارم هم بحث ایشون رو به خدمت شما گزارش میدم هم دارم روشش رو میگم سوال میکنن که این هشتره باید همه از امام صادق سلام علیه هست خب این برای ما یک پرسشیه هشتره باید شما اینجا دارید من فقط رو گفتم خدمتون چرا در زمان امام صادق سلام علیه این باید برجستگی پیدا کنه و اصحاب بیان سؤال کنن که آقا قول زور چیه؟ و چیتنه رجس من منال اوفال و چیتنه قولا زور چیه منیشتری لحوال حدیث اینا چی چی هست اگر بگیم که آقا قول زور رو حضرت بیان بگن که الغنا بعد شما بفهمید که چون گفته قول زور قول زور یعنی کلام باطل غنا هم منظورش چیه منظور یعنی آوازی بخونه که کلمات کفرامیز توش باشه کلمات کفرامیز باشه ایشون میفهمه خب اون اصحاب اون راوی که میاد از امام سوال میکنه قول زور چیه اون عربه خودش لغت قول رو میدونه یعنی چی لغت زور رو میدونه معنش یعنی چی قول یعنی کلام زور یعنی باطل کلام باطل میتونه تهمت باشه کلمات کفرآمیز باشه کز باشه دروغ باشه افتراه الله باشه میفهمه اینا رو میفهمه چرا باید سوال کن از امام اونم دقت کنید اونم صحابی برجسته مثل عویبسید به بس سوال کنه که آقا قول زور چیه توجه میدن اینا همه جمع جم کردن قرائن برای توجه دادن به یک نکته است که اگه این قرائن و این توجهات اتفاق نیفته این برداشت و این استنباد نتیجه نمیگیره توجه میدن به اینکه این هشت روایتی که از همان امام صادق آمده من تو دوره امام صادق اینا مطرح شده ساده شده از امام حکایت از ابتلاع عمومی مردم اون زمان به یک فعل حرام بوده حکایت از این داشته که در آن زمان به فعل حرامی مبتلا بودن هشتا روایته از اون طرف صحابی هم می دونن قول زور عربن میدونن قول زور کلام باطل رو می تونن تطویق بدن اما احساس می کنن که گویا امام صادق سلامه علیه زیل این آیات وچنان با رجسن من الاسان وچنان قول زور گویا چیزی انگار ایشون انگار چیزی پخش شده که امام صادق اینو یه جور دیگه ای داره تفسیر می یک نکته ابهامی در ذهن این صحابی بزرگواری مثل ابی بسید سوال درست شده مراجعه میکنه به امام صادق آقا این چی چی هست این قول زور اینجا پس این ابهام براش درست شده بود اگر شما بگید که آقا قول زور حضرت فرمودن قول زور رو تطبیق دادن به غنا بعد بیاد که خب پس اون غنایی که حرامه کدوم غناز بگیم غنایی که درش شما آواز بخونی کلمات کفرآمیز بگیم مثلا کلمات باطل بگیم خب اینو که عرض کردم دیگه تکرار نکنم پشت سرم عبیبسی این مقدار میدونه یه سوالی برای عبیبسی تولید شده که اومده سراغ امام صادق سلام الله علیه که این رو حل بکنه پس این نشون میده یه چیز دیگه این وسط هست یه غنای دیگه اینجا داره مطرح میشه یک غنای دیگه ای داره اینجا مطرح میشه که برای عباسی سؤال که اینو بپرسه که این قول زور چی هست این توجه دادن اینجا چی جوری اتفاق میفته با توجه به روایات زمان صدور یعنی کی این روایات صادر شده دوره مام صادق هست این از این نتیجه بگیریم که این پس یک ابتلای عمومی و موقع اتفاق افتاده صحابی که او از زمان پرسیدن کیا بودن صحابی کم کمی نیستن فوقه هان برجستان پس نشون میدهد که یک سطح دیگری از یک سطح دیگری از بحث متره، سطحش پایین نیست یه فقیه بزرگواری مثل عی و میاد سوال میکنه همه اینا توجه انسان رو دقیقتر میکنه در حالی که در حالی که مثلا ما وقتی به بعضی از متون فقهی مراجعه میکنیم این توجهات نیست و همون ابتدا همون ابتدا به این همین کفایت میکنه که به همین مقدار اکتفا میکنن که بله قول زور تطبیق داده شده حالا قول زورم هم که کلام باطله پس ما بگیم قناعی که این حضرت فرمودن یعنی اون غنایی که داره محتوای باطل هست پس اون وقت ما دقت کنیم پس وقت ما برای غناء فعلی یعنی آواز خوندن نمیتونیم از این رواست استفاده بکنیم این رواست کنار گذاشته میشن برای آواز خوندن و غناء فعلی که محتوا نداره یا محتوای اصلا خوب داره نتیجهی که اونجا گرفته میشه به خاطر اون مسیری که رفته شده این مرحله اول پس یه جمع قرینی استفاده میشه برای اینکه یه قرانی استفاده میشه برای اینکه مشخص میشه که نه اینطور نیست که این همون که بعضی فقها استفاده کردن غناع با محتوای باطل را ازش برداشت کردن اون نه این داره یه چیز دیگه رو میگم خب حالا مرحله بعدی میبینیم سوال میکنیم حالا که اجمالا مشخص شد پس اگر قول زور تطبیق داده شده بر غنا این غنا هم به معنای محتوای باطل نیست فقط اون نیست منحصره در اون نیست حالا سوال پس این روایت چی چی میخوام بگن روایات آیاتی که میگن فجتن با قول از زور بعد امام تطبیق داده به غنا این چی میخواد بگن اگر منحصره به غناه با محتوای باطل نیست این چی میخواد بگه اینجا هم باز اینجا هم باز برخی از متون برخی از متنها به گونه خاصی عمل کردن و ایشون به یه روش دیگه حرکت کردن این روش که من میگم خدمت شما روش روش فقه جواهریه یعنی روش متمایز از فقه جواهری نیست اما برجستگی داره یعنی یک نقاط عطفی داره که نتایج رو متفاوت میکنه کاملا نتایج متفاوت میشن حالا بریم سراغ این که ببینیم چگونه عمل کردن ببخشید من یه بحثی رو که باید چند جلسه گفته بشه دارم خدمت شما خیلی فشرده ارائه میکنم از محظر شما پوزش میخوام شما باید با فشرده اینا رو به بزر... صورت انتقال بدید تو زنتون. از خواهی میکنم حالا همین سعی میکنم که اقوال رو خیلی سرش این من خیلی از اقوال رو اینجا آوردم از سید لاری، میرزای شیرازی، حضرت امام اینا رو آوردم که از هم من عبور میکنم خب حالا از این روایات مفسره ببینیم چجوری استفاده شده از این روایات مفسره ببینید بعض از فوقه مثلا کتاب و شهادت مرحوم های گلپایگانی وقتی به این روایات رسیدن حکم به حرمت مطلق کردند کردن بعد بله حالا میتونید اینا رو برید ببینید یا مرحوم های عراقی هم همینطور وقتی که روایت تفسیری رو دیدن هم قناه کلامی هم غنای صوتی رو گفتن هر دوتاش هر دوتاش حرامه اما خب حالا ایشون چجوری عمل کردن مسئله که مطرح میشه اینی که ایشون اولا یه توجهی میدن یه توجه میدن خب این رو میتونیم بگیم که این توجه مربوط به دوران ماست فقه های قبلی اگر نگفتن چون در اون دوران کم بوده غناء بیکلام الان هست یعنی آهنگ بیکلام و موسیقی بیکلام الان مثلا مطرحه خب اینا اون موقع مطرح نبود که توجهشون به این صورت بگیره به این طرف بیاد که یه قسمی از غناء ها میتونه اینطوری باشه حالا بعضی از اینها رو عبور میکنیم ببینید یه مشکلی تو این روایت تفسیری پیش میاد یه مشکلی تو این روایت تفسیری پیش میاد قول زور و تو مسئله غنا پیش میاد اون هم این هست که ظاهر آیه شعن نزول آیه فجتن بور رج سمن اوسان قول زور این شعن نزول آیه درباره حجه در وایر حج هرچند دستوری که اومدین دستور عمومیت داره فجرنه بر رج سمینال اوسان و مناسب به حج،, حج نیست اما شعن نزولش حج امام صادق سلام اما آوردن قول دقت کنید فاصله رو ببینید خود شعن نزول هایی مربوط به حج بعد میگن که اینجوری هستش که فجرنه بر رج اوسان یعنی از پرستی. که اجتناب کنید قول زور هم گویا یک سری کلمات باطلی میگفتن دستور آمده که از این کلمات باطلم اجتناب کنید توی عجی اینا رو نگید اولی چند نزول آیه کاملا تو یک مناسک دیگه ایه. امام اومده امام صادق سلام علیه آمدن این رو تطویق کردن به غنا یه مرحله قبل که گذشتین هم که بعض از فقه به خاطر همین یه مسیر خاصی رو رفتن اما هنوز ما مشکلمون حل نشده که بالاخره ما نفهمیدیم چرا یک چیزی که شان نزولش هجه هست اون رو تطبیق میدن به غنا همین قسمت باز یه ورتهی شده یه چالهی درست کرده یه چالشی درست کرده بعض از ها نتایج دیگه گرفتن از همین قسمت ایشون برای حل کردن این مشکل یه قاعده کبروی ساختن که من این قاعده کبروی ازرو کنم خدمتتون که توی همین بیشتر این متنایی که نگاه میکردم من دیدم هیچ کدومشون این قاعده کبروی توش نیست حالا فقط تنها متنی که آدم مثلا میتونه بگه که این توجهات دقیق و موشکافانه درش اتفاق افتاده مکاسب میرزامامتقی شیرازی است رحمت الله علیه. اما بقیه بزرگان این توجه در این متون فقهی نیست و اون هم این که قاده کبروین لزوم تناسب میان ظاهر و باطن یا لزوم تناسب میان تعویل و تنزیل لزوم تناسب میان ظاهر و باطن. یا لزوم تناسب میان تعویل و تنزیل. باید بین آنچه که نازل شده با آنچه که تعویل صورت گرفتیم. باید بین ظاهر آیه با باطن آیه تناسب وجود داشته باشه این میشه قاعده کبروی این قاعده کبروی مسیر تحقیقی رو تغییر میده مسیر پژوهش برای استنباط حکم قنا رو تغییر میده میکشون به کدوم سمت وقتی شما به دنبال شما معتقد به این بودید که باید میان ظاهر و باطن آیه تناصب وجود داشته باشه میان تعویل و تنزیل تناسب وجود داشته باشه دنبال نقطه تن مناسبت میگردید چی هست که در اون قول زور در حج با این غنا با هم به اشتراک میرسن که حضرت اون فچتنه با قول زور رو که شعن نزولش حج هست تطبیق دن به غنا چی چی هست؟ اگر این رو شما به عنوان یک قاعده کبروی قرار ندید دنبال این نقطه مناسبتش و نقطه اشتراک نمیگردید فلزا عرض میکنم به خاطر این مسیر استدلالیشون اینجا یک کمی متفاوت میشه با بقیه میرن دنبال اون نقطه اشتراک نقطه اشتراک چی هست بین اون قول زور در هج با غنا اون نقطه اشتراک رو میگردن اون نقطه اشتراک همون بطلان هست بطلان یعنی چی؟ قول زور الله توضیح بدم خدمتون قول زور یعنی زور یعنی باطل لغت زور یعنی باطل قول زور یعنی کلام باطل اون شعن نزول آیم که میگه که اینها در ایام حج در مناسک حج کلمات باطل میگفتن کلمات باطل و بی معنا میگفتند بس از اون نهش شدن خب در غنا همه وجه بطلانی داریم ما در غنا هم یه وجه بطلانی داریم باطل بودن داریم شما میتونید این باطل بودن در غنا که بگیم غنا باطل است یه عمر باطلی هست این رو فقط حمل بکنید به این که بگید که غنا یعنی اون آوازی که کلام باطل بگه اما نه قبلا عرض کردیم که در این منحصر در اون نیست منحصر در اون نیست پس آهان میخایم برسیم به این که کم کم داره یه چیزی باز میشه معلوم میشه و اون امین که نه مقصودی است که نفس آوازخانی و نفس غنا متصف میشود به صفت بطلان به صفت باطل بودن نفس غنا نفس آواز اون وجه مشترکه بین قول زور در حج با غناء در جای که حضرت تطبیق دادن اون صفت بطلان بودنه یا به عبارتی شما توی مکاسب دیدید اون صفت زوریت وصف زوریت قول زور وصف زوریت اون بطلان هست بطلان هم اهم از این است که شما کلام محتوای آواز باطل باشه یا خود آهنگ باطل باشه یا خود آهنگ باطل باشه ببینید عبارت ایشون رو من بخونم پس غنا که در این ذکر شده مطلق غنا است لکن برای اینکه آن تعویل با تنزیل متناسب باید, باشد باید جهت بطلان در غنا ملحوظ باشد این جهت بطلان دو نوع است یا مضمون آن باطل است یا کیفیت آن باطل است کیفیت باطل به چه شکلی این بسته به این است که ما چگونه غنا را تعریف کنیم که بعدا تو موضوع شناسیش میاد در آیه شریف آن چه در واقع منهی انه هست صرف قول باطل نیست بلکه کل امر باطل است. غنا هم من الامور باطله هرچند قول نیست و فعل است، و هرچند این محتلان در مایه غنی به یعنی در کیفیت آن باشد ببینید این توجه این نتیجه گیری از اینجا ناشی میشه این نتیجه گیری از اینجا ناشی میشه یه برخی از برخی از اقوال فقهای دیگه هم اومده که حد وسط تطبیق قول زور بر این دقت کنید اقوال شاید شما ببینید و این سوال براتون پیش بیاد در اقوال از فقاهای دیگه هم اومده هم. حد وسط قول ز... تطبیق قول زور بر غنا وصف زوریت و وصف بطلانه شما برید نگاه کنید برید که آقا اونام گفتن بله در کلماتشون اومده نکته برجسته و مهم اینجا اینه چگونه شما تونستید استفاده کنید که آنچه که اینجا حد وسطه و منات حکمه بطلان است صفت بطلانه این چجوری تونستید استفاده کنید من همین که دارم می کنم خدمت شما که روش فقهی اینو دارم میگم خدمتونا این چیزی که اینجا برجستگی داره اینو دقت کنید همینه در اقوال بعضی از فقایدگم آمده است که این روایت مفسره به ما میگوید آنچه که حد وسط و آنچه که منات حکم است اون صفت زوریت و صفت بطلانه اومده تو کلماتشون اما سؤال من اینه من ارزو کنم که این چجوری شما تونستید به این نچه برسید که قول زور از زور یعنی باطل بودن منات حکم است، علت حکم باطل بودن است. چجوری اینو استفاده کردیم ما اونجا یک مسیر استدلالی که نشون بده چه جوری به این رسیدیم رو نداریم اما برعکس توی بیان اینو مسیر استدلالی رو داریم چطور اول میان میگن که بین تعویل و تعزیل باید تناسب باشه بین ظاهر و باطن باید تناسب باشه بعد میرن سراغ این که وجه مناسبت چیه وجه اشتراک چیه میرسن به این که وجه تناسب و منا... اشتراک چیه اون باطل بودنه چون هم در حج ا... اینا کلمات باطل می گفتن. هم در غنا ویژگی باطل بودن هست یعنی مسیر استدلالی دارن یه نکته ای رو من داخل پرندس خدمت شما بگم ببینید الان ما یه مشکلی که توی استظهارای فقهی داریم یک مشکلی که ما داریم اینه برخی از مناشه برخی از اختلاف فتاوا منشهش برخیش برمیگده به همین استظهارات مختلف فقها از آیه به روایت یه استظهاری میکنن این فقی میگه استظهار من اینه ظاهر آیه این را میگوید فقی دیگه میگه نه ظاهر آیه این را میگوید یه اختلاف اینجا وجود داره این دقیق کنید خب بالاخره هر کدوم به فهمی که میرسن به همون عمل میکنن نکته اینه اون جایی استظهار ارزشمند هست که مستدل باشه یعنی تو بتونی وقتی استظهار شخصی میشه یعنی میگه آقا من اینو فهمیدم از ظاهره آیه من دارم اینو میفهمم اون بزرگوار میگه من از ظاهره آیه منم اینو میفهمم میگه عرف اینجوری میفهمه اونم میگه اتفاقا برعکس عرف اینطوری میفهمه و اختلاف همچنان میماند میگه من به آنچی که فهم خودم هست مکلفم تو هم به فهم خودت این هست همچین چیزی هست. اگه ما بتونیم استظهارات رو مستدلش کنیم. استظهارات باید مناتش عرفی باشه دیگه. یعنی استظهارات تکیه به فهم و عرفی داره. ما میتونیم مستدلش بکنیم. بتونیم استظهار از آیه روایت رو توی یک مسیر استدلالی بندازیم. که زبان و مشترک پیدا کنه. اون وقت اون یعنی قوت فقهی شما رو داره میرسونه. اون داره دقت فقهی شما رو داره میرسونه. اون وقت دارید. نه که اکتفا نمیکنید به اینکه من دارم هم من دارم اینو میفهمم شما رو فهمیدید چیزی که اینجا اتفاق میفته همینه. من که این درس داوره رو میخوندم اصلا برنامه به این نبود که این رو تطبيق بیام ارز کنم خدمت شما که بررسی تطبیقی کنم و بعد برجستگی هاش رو پیدا کنم. یعنی ما از اولش قول ندادیم که بگیم ایشون متن فقیش برجسته است بس باید بریم پیدا کنیم. نه من میخوندم بعد این روش رو دیدم این روش روش عجیبی یعنی اینکه مسیر استدلالی درست کنی برای اثبات یک استظهار از آیه و روایت و نتیجه گیری این روش روش منحصر به فردیه و بعد رفتم توجه کردم ببینم آیا بقیه هم انجام دادن توی این بحث قناده نه اتفاق نیفتاد. هم که خدمت شما دارم میگم یاغ مولا بقی آقا اونام برید مراجعه کنید میبینید اونا میگن که آقا وجت نبوق قول از زور اون چیزی که اونجا مهمه اون زوریت هست نه قول اما من سوال میکنم آقای بزرگوار آقای فقيه چی میشه به چه دلیلی تو میگی اینجا زوریت مهم است فقط من تکیه کنم به بزرگی شما و اینو قبول کنم بعد میام میبینم تو بحث ایشون این استدلال پیدا میکنه اینم اون بردستگی است حتما برید اینو انشالله حالا اگه درس خارج رسیدید دو خواستید فکر کنم درس دادن بعضی از بزرگواران این رو بخونید این کتاب رو واقعا از جهت روشی فوق است خب در ادامه حالا این مقدار اجمالا روشن شده این مقدار اجمالا روشن شد که عرض کنم خدمت شما که وجه بتلان رو برجسته کردن دو این ها یه نکته دیگه هم بگم خدمتتون چون ما خیلی روی آیه قول از زور استادیم عرض کردم خدمت شما که یه سری دیگه از روایاتی که در مورد غناه هست زیل آیه من یشتری لحو الحدیثه من یشتری لحو اونجا هم همین ایشون همین روش رو به کار میگیرن اومد جناب وشا از امام رضا سلام الله علیه درباره من دلی له ول سوال کرد بعد یعنی نه میگفتش سمعت از شنیدم از امام رضا که از امام صادق سلام الله سوال شده در مورد من در مورد غنا سوال شده درستش اینه سوال شده حضرت فرمودن من یشتری له ول اونجا هم همین مشکل هست لحوالحدیس یعنی سخن چه چجوری این تطبیق داده شده بر غنا این مشکل است که ایشون با همین روش حلش کردن که باید اون ظاهر با باطن تناسب داشته باشه اونجا هم گفتن وجه اشتراک بین لحوالحدیس با غنا لهویته صفت لحوییت رو برای غنا استخراج کردن نتیجتن تا اینجا این شد که به این نتیجه رسیدن پس, پس، آنچه که مذهب و محل حکم حرمت غنا هست چیه؟ غنا باطل و غناء لحویست دو تا صفت رو ما پیدا کردیم غناء لحوی و غناء باطل با همین مسیر اما در ادامه بعضی از فقها هم به همین تکیه کردن گفتن که آقا چون مکاسبم دیدید موضوع این روایات و مصد به حرمت غناء لحوی و غناء باطل هست اما ایشون با همین توجهاتی که با همین توجه کردن با همین قرائن میگن نه تنها غناء لحوی و غناء باطل حرام است یه قید دیگه هم اضافه میکنن با همین توجهات که ما در متناهی دیگه این رو نمی بینیم. اون قید چیه قید ازلال انصبیل الله یعنی تماما آخر کار بحث ایشونی میشه. آنچه که این روایت دارن از اون نهیش میکنن کنن غناء لحوی و باطل مزل انصبیل الله هست غناء لحوی و باطل مزل انصبیل الله خب همینجا یه بحثی رو من باز کنم که یه فرقهایی چون من این بحثم بررسی تطبیقیه دیگه من ناچار باید برم ای بین رأ الر... دیدگاه ایشون با دیدگاه دیگران مقایسه کنم همجه یه بحث رو باز کنم بعضی از آقایون بعضی از بزرگان وقتی مراجعه کردن به این روایت گفتن مطلق غنا حرام است بعضی بزرگان وقتی مراجعه کردن به این روایت گفتن مطلق غنا حرام است چرا؟ چون فچن با قول از زور میگه القنا تمام یشتری لعول حدیث میگه الغنا تمام بس مطلق الغنا حرام است ایشون در زیل همین بحثایی که انجام میدن با همین جمع کردن قرینه با همین تکه کردن به لزوم تناسب بین ظاهر و باطن تعویل و تنزیل میگن نه این قول قول درستی نیست که شما بگید مطلق الغنا حرام است نه این صحیح نیست چرا؟ چون سوال میشه اگر حضرت بخوام بگن که مطلق الغنا حرام است چرا زیل قول زور آورد این رو اگر میخوان بگن مطلق الغنا حرام است چرا زیل حدیث الحدیث آوردین رو یه وجهی وجود داره یک تناسبی باید وجود داشته باشه بین قول زور و لحو حدیث با غنا اون وجهو باید شما پیدا کنید وقتی شما میرید اون وجهو پیدا میکنید مطلق الغنا حرام نیست غنا مقید حرام است غنا مقید به این که لهویت داشته باشه چشم که مقید به لهویت باشد غنای که مقید به بطلان باشد غنایی مقید به ازلال انسابیل الله باشه غنایی مقید به ازلال انسابیل الله اون مطلق الغنار هم نقد میکنن یه حالا اینایی که میگم به عنوان نظر یک طلبه هم دست و پا داره میزنه چهارت کلمه رو یاد بگیره در نظر بگیرید خدا نکده محضر بزرگان جسارت نشم از از کلامیشون عرض میکنم. وقتی که ما میریم روایت رو میبینیم این روایت ظاهر الاطلاق هم. یعنی الغنا میگه این علا ظاهر الاطلاقه مراد جدی شاره مطلق غنا نیست نمیشه ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که نوشتن الغنا توربت اومده الغنا پس ما میگیم که بس الغنا حرام است این علا ظاهر الاطلاقه منو شما باید بگردیم فصل کنیم بررسی کنیم بینیم که مراد جدی شاره چی هست مطلق الغنا هست یا نه خب این هم نقد استف... اون اقوالی که مطلق الغنا رو حرام میدونن اما بحث آخر فقط اشاره کنم چون که همین هم که با نفس نفس زدن تا اینجا رسوندم خودش هم شاید هنر باشه کم مونده از وقتم من این جمعش کنم بحث آخر درمود روش بحث موضوع غنا... موضوع شناسی غنا هست ببینید این خیلی مهمه این چیز که اتفاق این تو این قسمت هم باز هم روششون یک برجستگی خاصی داره و اون اونم استش که معمولا ببینید خب برای فهم معنی غنا باید به کجا مراجعه کنیم آقایون به کجا عرف عرف علل لغت هم حرف غلطی نیست اما تا عرف به خاطر که مفاهیم این خطابات القاء به عرف شده باید عرف رو مد نظر قرار بدیم خب همین اولش بعد که اول کار که میخویم بفهمیم حالا فهمیدیم که غناء لهوی باطل مزلل ان سبیل الله حرامه حالا غنا چیه شما فهمیدید به عرف مراجعه کنیم همینجا همین اول کار یک چالش و مشکلی پیش میاد میدونید که جزء مثال های واضح و روشن شبه مفهومی هم غناست وقتی میخوام مثال بزنن همین غنا رو مثال میزنن یعنی معنا و مفهوم غنا مشخص نیست خیلی پیچیدگی داره خب من یه سری اقوال فقه ها رو آوردم حالا از اونها عبور میکنم که تصریح میکنن که اضطراب وجود داره در فهم معنای غنا. ایشون یه نقدی میکنن به بعضی از بزرگان میگن چرا شما همون ابتدای کار به عرف مراجعه میکنید برای فهم معنای غنا؟ چرا مگه نباید میگن وقتی شما که اهل دقتید شما که فقیهید شما که اهل لغتید معنای غنا رو نتونستید بازش کنید، چی جوری از عرف توقع دارید به شما بگه غنا یعنی چی؟ پس چه کنیم؟ دقت کنید. میگم ما اول باید بریم سراغ استعمالات. میرم سراغ استعمالات اهل ادب، اهل لغت، اهل فقه. اینا رو میریم می می نگاه میکنیم. می ببینون می غنا رو کجا استفاده کردن. میدن مراجعه میکنن دو تا معنا برای غنا به دست میارن. معنای عام، معنای خاص. معنای عام غنا یعنی همین ترجیع الصوت، مد الصوت، کشیدن صدا. معنای عام غنا مطلق آواز به دو معنا میرسن معنای آم چیه مطلق آواز همینی که منم که صدام بد باشه یه کمی صدامو بکشم بالا پایین کنم بهش میگن غنا این معنای عام به غناست معنای خاص غنا اونی که آموزش میدن میره کلاس آموزشی و خانندگی بهش میگن دستگاه یاد میگیره دستگاه موسیقی یاد میگیره به دو تا معنا میرسن خیلی دقیق باشد عزیزان. بعد خب آقا کدومش الان موضوع روایات ماست موضوع حرمته میفهمند که روایاتی داریم درباره حسن صوت صوت فلقرآن صدای زیبای در قرآن خب معنای آم غنا اون صدا رو بلند کردن ممکنه یه آدمی یه صدای زیبا داشته باشه و با صدای زیبای ارز کنم یه آوازی هم بخونه اما بهش نگن خانندگی میکنه با استفاده از روایات حسن و صوت که جائز میداند حسن صوت را در قرآن ایشون معنای عام به رو کنار میذاره وقتی یه روایاتی داریم حسن و صوت فلقران را جائز میدونه معلومه که اون معنا موضوع حرمت موضوع حرمت شرعی نیست پس اون میره کنار پس چی میمونه؟ معنای خاص غنا میمونه چی بود؟ خانندگی یعنی آواز خانی با دستگاه های موسیقی و با شکل خاص خودش اون میشود معنای غنا که اگر مقید بشه به لهویت به بطلان به ازلال سبیل الله اون حرام است. در نهاد میرسن به چی؟ محدوده حکم و حرمت خدا مشخص میشه حکم و حرمت الهی مشخص میشه اینکه گفتند این حرام است مشخص میشه یعنی خانندگی که همراه باشد با حالا خانند... حالا اینجا میگن خانندگی باید عرف تشخیص بده عرف به چی؟ چی میگه خانندگی اون باید تشخیص بده آواز خانی خانندگی همراه با قید لهویت قید بطلان و اذلال انسیبله این حرام است این بررسی ها و این مسیر که از ابتدا شروع شده تا به این نتیجه برسه خیلی فرق داره با اینکه ما بگیم فل جمله میدونیم غنا حرام است خیلی فرق داره با اینکه بگیم مطلق الغنا حرام است یک موشه کافی ها یک دقت های خاصی نیاز داره تا این که مشخص بشه که کجا حکم الهی دوری کدوم قسمت قرار گرفته این چیزی بود که ما خواستم خدمت شما تقدیم کنم حالا انشالله که تونستم تقدیم کنم چون ما ذهنمونیم بود که خب رفقاست سطح خوندند و مکاسب خونده اینا رو خوندن دیگه اتمن یعنی بحث تو شیخم انجام داده حالا اینم عرض کنم به هم به همین نتیجه میرسن اما مسیر استدلالی ها این نیست این مسیر استدلال این نیست به قول حضرت آقا میگن که ایشون هم توی نظر دوم به این جنبندی میرسه که غناع لحوی باطل حرام است اما به این شیوه حرکت نمی کنن این شیوه شیوهیه که اتقان داره دقت داره عمق داره بله آقا من در خدمتم یک سوال فقط اومده سوال اگه دیگه هم بود در خدمتیم اما اون سوال یه سوال که اینه که سوال نیست ده دقیقه مونده این هیچی؟ <تصفح> اما این که برای آمادگی ورود برای عرصه درس خارج چه پیش نیازایی این دیگه حضور در درس خارج مسائل مستدسه برای است یا هست نه؟ الان جلسه بعدی که شروع میشه بلا فاصله بعدی یه دیگه بشه. فقط من یه اشاره کنم جهت احترام به این بزرگوار که درس خارج چه پیش نیازهایی است برای ورود آقا این تجربه که ما داریم فقط با تجربه عرض میکنم خدمت شما دومی هم میگم خدمتون آ این رساله مکاسب و کفایی و اینا رو صف محکم بچسبید اگه کسی هم قرار نعاوری کنه خداییش ما هم همون موقع که خدمت بعضی از بزرگوار میرسیدیم که میگفتیم آقا دنبال اون سال 82 بحث تولید علم و جنبش نرم افزاری مطرح شده بود و پیگیر بودیم و فلان همون موقع اینو حرف زدم با میگفتیم که حالا اینا دارن میگن دیگه بعدا اومدیم تو درس و فلان دیدیم همینه همینه است به قول مقام مقاوس سفری حضرتها میفهمودن بیمای فتیر است رسائل مکاسب کفایی یا حلقات حالا کفایی و حلقات خیلی اینا اگر خونده نشه درس خارج باد حواست درس خارج ده حواست مخصوصا اصول خوب اگه خونده نشه اگه کسی فکر کنه که من که توی درس خارج بشینم جبرانش کنم شدنی نیست یعنی خیلی زحمت میخواد اما دومی که فرمودن برای درس حضور درس خارج مسال محتصد برای بادی هم مناسبست. نه مسال مستعدسه برای اول درس خارج مناسب نیست چون که تازه اون بزرگوار میخواد تازه موضوع جدیدی رو بشکافه بررسی کنه قبلا اصلا متنی برش وجود نداشته تازه داره را رو شروع میکنه و توی اونجا شما آموزش نمیبینید. آدم باید 3-4 سال اول درس خارج رو با صوم و صلات و طهارت و اینا بره تا به روش برسه روش استنبات و اینا رو که خوب کار کرد ورزیده شد توش کار کرد مباحثه کرد قوی شد آرام آرام بره ما نباید کلمون خیلی چیز باشه که پرباد بشه که نه بریم دیگه این فقه ها فقه ها قدیمی شده بریم فقه پول کار کنیم نظام نیاز داره درسته اما فقه پول بیمایه ضرار بمیزنه هم به نظام هم به حوزه داریم ها از این درس بیمایه داریم نظرات بیمایه نظرات سطحی نظرات خیلی خیلی سخیف بیرون میاد آسیب میزنه هم به فقه آسیب میزنه هم به نظام آسیب میزنه اما برای پرمایه بودن لازم آدم چهار پنج سال تو همین درسای عمومی بره شرکت بکنه بعد از اون تو یکی از موضوعات مستحدث اقتصاد سیاست فرهنگینا بره تمحوز کنه بله؟ خوشم و السلام علیکم و رحمت الله ببخشید وقتتون رو